یاد دادان که سر کوی تو هم منزل بود دیده را روشنی از خواه که درت حاصل بود راست چون سوسن و گل از اثر صحبت پاک در زبان بود مرا هر را در دل بود دل تو از پیر خرد نقل معانی میکرد، عشق میگفت به شهرهان چه بر او مشکل بود در دلم بود که بیدوست نباشم هرگز چه توان کرد که سعی من و دل باطل بود دوش بر یاد حریفان به خرابات شدم خم می دیدم خون در دلو دردرگل بود پس بگشتم که بپرسم سبب درد فرا مفتی عقل در این مسئله لایقل بود راستی خاتم فیروزه بو خوش درخشید ولی دولت مستعجل بود دیدیان قهقهه کبک خرامان حافظ که در پنجه شاهین قضا قافل بود؟ ازن در مرسی شیخ ابو اسحاقه و خاجه در بیت های آغازین از روابط نزدیک دوستانهی که با این ساه جوان داشته و صمیمیتی که بین این دوتا بوده سخن میگه و در این حال ارادت فوق العاده خودش رو به این پادشاه و صفات انسانی او ابراز میکنه شاه کشته شده یا اگر کشته شده اند بعد از مرگش این رو در مرسیه او گفته با یه مرد خونریز قصیل قلبی مثل مبارز الدین هم بر تخته در یه چنین روزگاری حافظ میگوید که اولا یاد میکنه از روزگار مصاحبت با ابو اسحاق یاد بادآن که سر کوی تو هم منزل بود بعد در کمال توازو و در کمال ارادت میگوید که دیگه را روشنی از خاک درت حاصل بود این مدح بیسل است دیگه این ستایشی است که بعد از مرگ یو پادشاهی و در دوران نکبت و بدبختی او گفته شده است که روشنی چشم من از خاک در تس و این در اون روزگار خوب ارزش پیدا میکنه وقتی آدم ببینه که این شاعر احساس خودش رو که در روزگار دوستی و همصحبتی داشته چگونه در روزگار جدایی و در روزگاری که بدبختی اون پادشاه فرا رسیده احساس خودش رو ابراز میکنه یاد با آدم که سر كوی تو هم منزل بود نشان اینکه بسیار اوقاتش رو در مصاحبت اسحاق دیده را روشنی از خاک که درت حاصل بود این دیده یعنی چشم از هر که بپرسن میدونه من از دستوری یک نکتر رو بگم برای اینکه توجه دوستان جلب بشه دیده صفت است از مستر دیدن دیده یعنی اون چیزی که آدم او رو میبینه در هر دید. اگر بخوایم چشم رو بگیم باید بگیم بیننده براینکه چشم ابزار دیدن دیگه ابزار دیدن میشه بیننده و فردوسی هم از چشم به همین لغت به همین بیننده تعبیر میکنه میفرماید که به بینندگان آفریننده را نبینی مرانجان دو بیننده را یعنی دو تا چشم این درست دقیقم هست دیده در مقابل بیننده است یعنی بیننده میبینه چی رو میبینه اون چیزی که مرئیست اون چیزی که رؤیت میشه او میشه دیده خیلی خوب حالا چگونه شده که لفظ دیده که صفت است به جای بیننده به کار رفته برای که بسیار ما دیدیم که دیده رو به معنی چشم به کار حافظ بوزون رو فراوان داره دهخان سال چه خوش گفت با پسر زنهار تا توانی اهل نظر میازار دنیا وفا ندارد ای نور هر دو دیده دیده یعنی چش؟ دلیل این است که دیده به معنی صفت مفعولی یعنی چیزی که رؤیت میشه در فارسی مورد استعمال نداره اون که مورد استعمال داره ابزار دیدن یعنی بیننده است منتها کلمه بیننده کلمه درازی است و سه تا هجای دراز داره دی، نن، د و یکی از خصوصیات زبان و طبیعت زبان این است که روز به روز رو به آسانی و اختصار میره چون دیدن که دیده به اون معنی مورد استعمال نداره و بیننده که معنی چشم کلمه درازی است آمدن بیننده رو گذاشتن کنار دیده رو به جای آوردن به برنی چشم به هر هرها دیده را روشنی از خاکی در از حاصل بود یعنی روشنایی چشم من از خاک در تو راست چون سوسن و گل از اثر صحبت پاک در زبان بود مرا آن چطورا در دل بود سوسن است که تشبیه کردن او رو به چیزی که زبانهای متعدد خود حافظ میفرماید که ز مرق صبح ندانم که سوسن آزاد چه گوش کرد که با ده زبان خموش آمد سوسن و ده زبان باز جای دیگر باز خاجه میفرماید که به سان سوسن اگر ده زبان شود حافظ چو قنچه پیش توش مهر بر دهن باشد حالا ده زبان ممکن این ده اینجا قید کسرات باشه یعنی حیرتا ده تا زبان نداشته باشه ولی حال سوسن گلی بوده است که زبانهای بسیار این یعنی تشبیح می شده به اینکه زبانهای بسیار بشته اما گل گل در آثار سعدی و حافظ یعنی تا قرن هشتون. فقط به اون چیزی می گفتن که امروز در زبان اروپایی در زبان فرانسوی و انگلیسی به اون گن روز و ما امروز او رو گل سرخ. ما امروز همه نوع این پدیده رو میگیم گل به معنی کل گل ها و مل روز رو میگیم گل سرخ. اینجور نبود در قدیم گل اسم اسم این گل سرخ بوده، دلیلش هم این که وقتی میگیم گلاب یعنی عرقی که از گل سرخ میگیرن در حالی که اگر گل به معنی مطلق گل بود عرقی هم که از یاس بگیرن یا از بنفشه بگیرن یا از چیزای دیگه بگیرن میشد گلاب ولی نمیشه که گلاب به معنی عرقی است که از گل سرخ میگیرن بنابراین گل به معنی گل سرخه شواهد بسیار زیاد دیگر هم داره انظر لغتچناسی هم در عوستا و در سایر مسائل شواهد هست من از اون بحث میگذارم به هر حال گل در دیوان خاجه و گل سرخه که در اون روزگار و هم اکنون هم در تمام نواهی کبیری و در هاشیه کبیر به طور خودرو رو بیرون میاد برگ های بسیار کم و تیغ های بسیار سخت داره برای اینکه کبیر کم آب تیغ داره برای اینکه آبش از دست نده برگ کم داره برای اینکه کمتر آبش تفقیر بشه گل هم خدروست و پنج برگ بیشتر نداره رنگش هم است و همونیست که در اصطلاح عامه میگن گل محمدی و خربارها از این رو هم در نواحی خراسان، هم در جنوب ایران در شیراز و اینجا در هاشی کبیر و هم در قرب در نواهی کاشان اونجاها به خروار اینها رو میگیرن و میبرن و ازش گلاب تهیه میکنن یکی از جاهایی که گلاب بسیار زیاد داره قمصر و این از همین راهه گل اوس به هر حال که هر جا در شعر حافظ میگیم گل همین است و گل بوی خیلی خوش داره یعنی عصری داره که ازش بیرون میاد در حقیقت و اینجا میگه که در نتیجه صحبت به معنی دوستی و رفاقت میگه تا راست یعنی درست و دقیق مثل سوسن و گل ما در نتیجه دوستی بیشاعبه و صحبت پاکی که با هم داشتیم هرچه در دل تو بود در زبان من هم بود یعنی اون چه تو نیت میکردی من به زبان می آوردم کنایه از این که ما کاملا طرز فکر و سلیقه و نحوه فعالیت ذهن و ذوقمون به یک صورت بود و اونچه در خاطرتون میگذشت من مثل سوسن به زبان میآوردم راست چون سوسن و گل از اثر صحبت پاک در زبان بود مرا هرچه تو را در دل بود دل تو از پیر خرد نقل معانی می‌کرد عقل می گفت به شهران چه بر مشکل بود این پیر اصطلاح تصوف و پیر کسی است که در رأس حرم تربیتی صوفیه قرار دارد یعنی بزرگترین مقام در هر سلسله تصوف پیر پیر در رأس کل است. مقام دومی که بعد از او شیخه بنابراین همینجا بگم با اینکه اینجا مطرح نیست ولی عرض میکنم که هر جا در دیوان حافظ صحبت شیخ شده تصور نفرمایید که مراد آخونده آخوند رو حافظ به عنوان فقیه یا زاهد یا وائز ازشون نام میبره شیخ مقام دوم رو داره در تصور و اینکه سعدی رو میگن شیخ عجل برای اینکه او هم در سلسله تصوف نفر دوم بوده وقتی که پیری پیر یک ای هست یک نفر در رأس اون سلسله مثلا سلسله گنابادی یا سلسله نمیدونم اللهی یا هر سلسله دیگری یکی در رأس هم هست که او پیره بعد این در شهرهای مختلف ها دارن الان هم تمام این صوفیه خانقاهای مختلف در شهرهای مختلف دارن در هر خانقاه یکی باید باشه که ریاست اون خانقاه و ارشاد جماعتی رو که به سوفیانی که به اون خانقاه میان به عهده داشته باشه اون شخص بهش میگن شیخ و هر جا اینجا صحبت شیخ باشه در, در, در دیوان خاجه مراد این است و هر حال پیر که مرشد کل صوفیانه اینجا حافظ خرد رو به پیر تشبیح کرده میگه که وقتی که دل از پیر خرد معانی نقل می کرد گاهی که این معانی مشکل بود یعنی مسئلهی در این میون اتفاق می او عشق بود که اون معنی رو تفسیر می کرد. دل که از پیر خرد نقل معانی می کرد عشق میگفت به شرح آن چه برو مشکل بود. بعد شکری از دوری و فراغه در دلم بود که بی دوست نباشم هرگز. اینطور اراده داشتم. اینطور نظر داشتم. ولی چه می کرد؟ در دلم بود که بی دوست نباشم هرگز. چه توان کرد؟ که سعی من و دل باطل بود. دوش بر یاد حریفان به خرابات شدن خوم می دیدم خون در دل و سر در گل بود در نسخه های جدیدتر نوشتن خون در دل و پا در گل بود برای اینکه به نظر که سر در گل تعریفی نداره ولی درست نیست اولا خرابات جاییست که اهل ایش و طرف معمولا در اونجا میرفتند و به منحیات و منکرات میپرداختن در روزگار جوانی و بچگی ما خرابات جایی بود که توش هشیش کشتن. در درجه اول هشیش کشتن. تریاک و عرق و این چیزها هم در اونجا مجاز و به هر حال سوپیه از خرابات تعریفی دارن که اونجا جایگاه است که در حقیقت از ننگونام گذاشتن و فکر اینکه با ریا و تزبیر آبرو آب برای خودشون درست بکنن هر حال حافظ یکی از کسانی است که میگوید که من اهل خرابات من نواره خرابات مقام نیست مثل حافظ میگه من به یاد حریفان حریفان از دست رفته که بعد اشاره خواهد کرد که ابو اسحاقه رفتن به خرابات چه دیدم؟ خام می رو دیدم که در دلش خونه شراب گل رنگ، سرخ رنگه بنابراین خون. اما سردرگه میدونید که در موقع مصیبت رسیدگی این رو ما هم در جوانی خودمون شاید همین حالا هم دید که وقتی که دسته را میانداختن و عزاداری میکردن مردم به علامت ازاد در روزهای آشتورا به خصوص و در روزهای قتل مقدسان مذهبی اونایی که خیلی چیز بودن یه مقداری گل به سرشون میمالیدن و این گل به سر مالیدن نشانه سوگواری و اندوه بسیار خوم رو هم بعد که شراب به جوش میامد و تخمیر میشد و قند انگور تبدیل میشد به الکل دیگه باید از رفت آمد هوا به کلی جلو گیری میکرد برای اگر در معرض جریان هوا قرار میگرفت بلا فاصله شراب تبدیل شد به سرکه. یعنی یه باکتری دیگری به نام استی که در هوا وجود داره شروع می کرد روی شراب به فعالیت و الکل رو تبدیل می کرد به سرکه. این است که بعد از اینکه خم از جوش میافتاد و شراب آماده می برای که اینکه بشه و فرو بنشینه و صاف بشه در خم رو میبستند و گل می گرفتن. تا هیچ منفظی برای ورود هوا وجود نداشته باشه اگر نه خوم ترشم شده براقی خب میگه من خوم می رو دیدم چجور دیدم خون در دلش بود گلم به سرش مالیده اما پا در گل بودن هیچ نشان مصیبت رسیدگی نیست علاوه بر این در نسخه های معتبری که دکتر خانلری در دست داشته همه جا سردرگل بوده تا اینجایی که من میبینم ارز کنم که نه نسخه مورد استناد دکتر خانلری بوده در این غزل رو از نه نسخه قدیمی استخراج کرده فقط یکیش یعنی نسخه خلقالی که مورد استفاده مرحوم قدوینی هم بوده اون یکی فقط پادرگل داره باقی نسخه ها هشت نسخه دیگه همه سردرگل دارن و این درستن هم هست دوش بریاده حریفان به خرابات شدم خوم می دیدم خون در دل و سر در گل بود پس بگشتم که بپرسم سبب درد فراق مفتی عقل در این مسئله لایقل بود مفتی یعنی فتوا دهنده کسی که در مسائل مختلف فتوا مفتی عقل اضافه است عقل رو تشبیه میکند به فتوا دهنده. در حقیقت هم عقل جدا کننده است و ما هم در کارهای خودمون به فتوای عقل تسلیم میشیم. میگه خیلی کوشش کردم خیلی گشتم که سبب این جدایی رو بپرسم. ولی مفتی عقل در این مسئله هیچی عقلش نمیگه لا لایقل یعنی کسی که چیزی به عقلش نگه راستی خاتم فیروزه ابو اسحاقی خوش درخشید ولی دولت مستعجل این خوش درخشید ولی دولت مستعجل بود الان ضرب المسل یعنی تقریبا هیچ ایرانی درس خونده ای نیست که این مصرع رو به خاطر نداشته باشه و در همین قبیل موارد این رو به کار نبره اما شاهکار حافظ در جای دیگر این قضل مرسیه شاه شیخ ابو اسحابه بسیار. خاتم فیروزه یعنی انگشتری فیروزه بهترین فیروزه گفتن در ایرانه بهترین فیروزه ایرانه در نیشابوره و در کتاب جواهرشناسی از هزار سال پیش عبوریحان بیرونی در الجماهر فی معرفت الجواهر و جاهای دیگه همه نوشتن که بهترین فیروزه فیروزه است که معروف است به فیروزه ابو اسحابی فیروزه ابو اسحاقی. حالا چرا یه ابو اسحاق نامی اول این فیروزه رو استخراج کرده یا کشف کرده نمیدونم ولی ذهن خاجره ببینید که اولا فیروزه از فیروزی و منی پیروزی و معنی نصرت و فتح و ایناست و خاتم فیروزه در این حال کنی یعنی انگشتری فیروزه در این حال نشان فتح و فیروزی و امثال اینا هست فیروزه ابو اسحاقی بهترین نوع فیروزه هم هست در عین حال دیگه اشاره از این سریحتر و از این زیباتر به شاه شیخ ابو اسحاق هم که نمیشه که راستی خاتم فیروزه ابو اسحاقی یعنی انگشتری سلطنت شاه شیخ ابو اسحاق در عین حال که فیروزه ابو اسحاقی وعنی فیروزه بسیار مرغوب هم هست ولی الان اینجا این معنی رو هم ازش گرفته راستی خاتم فیوزه بو اسحاقی خوش درخشی یعنی روزگار فرمون روایی او بسیار روزگار خوبی بود ولی دولت مستعجل بود خیلی هم دولت مستعجل نبود چهارده سال سلطنت کرده بود ولی وقتی به آدم خوش میگذره دوران دراز هم به نظر او یک لحظه بیشتر نمیاد و حافظ همین رو اشاره میکنه بعد هم میگوید که ارز کردم که شاه شیخ حب اسحاق هیچ اعتنایی به دشمنان نمیکرد و سنگی در ترازوی کسانی که آمده بودند و او پشتش گرم بوده به پشتیبانی مردم شیراز و نمیدونست که در لحظه حساس با اون نامردی میکنند و از قدر اهل اصر از نامردی مردم روزگار که خاجه به همین مناسبت دیبان خودش جمع نکرد قافل بود این از که اعتناعی نکرد تا وقتی که او آمد و کار خودش رو تمام کرد و او رو گرفت تازه. میگه این درست مثل اون کپک است که صدای کپ در دوران جفتجویی و در دوران کامجویی و بهار شبیه خنده است به همین دلیل او رو به قهقهه تشبیه میکنند میگه قهقهه اون کپک خورامان رو دیدید که در همون لحظه شاهین قضا بالای سرش بود و داشت میگرفتش ولی او قافل از سرپنجه شاهین قضا قهقهه میزد بعد هم گرفتار اون شاهین شد و از دست رفت و البته چنانکه که عرض کردن این غزل با تعثر و تحصیل بسیار همراهه و هم با ارادت و احساسات دوستانه حافظ و خب یکی از نشونهای این است که ببینیم که چگونه شعر حافظ شن نزول داشته و چگونه او متأثر می شده از یه مطلبی اثر می سه ذهنش و با چه زبانی این تأثری رو که پذیرفته بوده بیان می کرد.